داستان هفته هیچی نمونده اولین طبقه ساختمان بزرگ و دنبش تجارتخانهش بود و طبقه دوم دفتر کارش ریش جوگندمی‌اش را سه سال پیش تراشیده بود اما چون هنوز به چانه ی بی بیریشش عادت نکرده بود هر بار که میخواست به ریشش دست بکشد و ریش را سر جایش پیدا نمیکرد جا میخواد مثل همیشه پشت میز روی صندلی گردانش دو زانو نشسته بود دستمال بزرگش را روی زانوهایش پهن کرده بود و هر از گاهی با آن عرق صورت و گردانش را پاک می‌کرد توالت فرنگی و اتو با دیگر اسباب تمدن مشکلی نداشت هر کاری می‌کرد نمی‌توانست به توالت فرنگی عادت کند چون چاق بود نمی‌توانست بالای توالت فرنگی تعادلش را حفظ کند از اتو هم بیزار بود. از آنجا که عادت داشت دو زانو بنشیند یا چوم باطمه بزند و توی شلوارش خراب می شود. برای همین از توالت فرنگی و اتو دلخور بود. یاد گرفته بود به زنهای بالاشهری شهری مادمازل بگوید. گردنبند هم می اندخت. دیگر چه؟ چون بستن گردنبند سخت بود هیچ وقت درش نمی آفرد. تا پارسال موهای سرش را نمره دو می زند. کلاهش را که از سر برمیداشت می چین سفیدش پیدا میشد. کلاهش را نزدیک میزش به میخ روی دیوار آویزان میکرد. ارخچین به سر روی سندریش چنبات می زد. از وقتی ریشش را زده بود، یعنی از هشت ماه پیش، موهای سرش را کمی بلند کرده بود. و دیگر ارخچین هم سرش نمیگذاشت. داده بود دعای برکت را قاب کنند و بالای سردر دفتر کارش به دیوار بزنند. روی دیوارهای دفتر هم توی قابهای ریز و درشت، تابلوهای های کاسب حبیب خداست بر چشم بد لعنت، در حقیقت روزی رسان اصلی خداست، امروز نقد فردا نسیه آویزان بود. تسبیه کهروبایی را توی دستهایش شطرق می و با جوانی که رو رویش روی صندلی نشسته بود صحبت میکرد. توی مملکت دیگه کسی نمونده که حرفش حرف باشه. حرف که زدی جونت هم که رفت، حرفت نباس بره. حرف مثل ناموس آدم میمونه. میگن بده اونو فلان روز میدیم، اما این خبر ما حرف و ناموس خودمون میدونیم. اگه به یکی بگیم فلان ساعت فلان جا میبینمت، اگه سرمونم بره رو حرفمون هستیم خودمونو میرسونیم. حرف یعنی این، حرف از دن آدم در میاد نزد، اما توی این روزگار دیگه کسی و حرفش عمل نمیکنه قدیمما که اینطور نبود محض رضای خدا یکی پول میدی تا بزنه به زخم زندگیش بعدش باز ادایی دنبالش تا بتونی پول خود تو پس بگیری تو میشی کار اون میشه طلبکار به این موت قسم دیگه کسی نمونده که حرفش حرف باشه قولش قول باشه هنوز حرفش تمام نشده که در کناری باز میشه مانشیش تلفن به دست دیده می شود. پیداست دارد با کسی تلفنی صحبت می کند. دستش را روی دهنی تلفن می گذارد تا طرف مقابل صدایش را نشنود. بعد می گوید. آقا خوشید بیک میخوام با شما صحبت کنن. روی صندلی کمی جا به جا می شود و می گوید. چی؟ اگو نیست. بگو رفته بیرون. اینجا نیست. یه جوری از سروازش گمرتی که عوضی منشی به آدمی که دارد تلفنی با او صحبت می میکند میگوید خورشید بهیک هزنیز همین پنج دقیقه پیش اینجا بود ها اما الان رفته بعد از گوش دادن به حرفهای طرف مقابل دوباره دستش را روی دهنی تلفن میگذارد و به رئیسش می گوید آقا میگم برای امروز قول داده بودین سر همین ساعت میگم مسئله پولیه انگار حرف زده بودین و گفته بودین پول امروز میدم صدای شترق شترق بلندتر می شود. و فریاد زنان میگوید بابا! گفتم از سر واضح کن دیگه بگو مریضه چه می دونم بگو رفته زیر ماشین داره سقت میشه همین که منشی تلفن به دست می و در وسط را می بندد. رئیس از جوانی که رو به رویش نشسته می پرسد آه کجا بودین؟ چی داشتم می گفتم؟ جوان گفت داشتی می تو این دور و زمون حرف هیشگی حرف نیست آه اره اره داشتم همینو می گفتم فقط این نیست که دیگه هیچ چی رایت مثلا همین بانکا کارشون چیه؟ نزول خوری نزول خوری به شکل رسمی نمیگن آخه حروم گناهه اخلاقیات نمونده دیگه دوباره در وسط باز می شود و منشی میگوید؟ اون قضیه رو پرسجو کردن و تطوش در آوردن. رئیس میپرسد. پرسد کدوم قضیه رو؟ همون که 150 هزار لیره قرض میخواست. میگه حاضره تا صدی بیست و پنج بحره بده. بسهر مگه تو این زمانه میشه پولو با صدی بیست و پنج بهره داد. اگه کسی حاضره بده خودم میخوام. اما واسه شیش ماهه آقا. حالا وسیقش درست حسابیه؟ بله آپارتمانش رو حد پونسه هزار تا میره. خب اگه اینطور باشه شانسون بزنه و قرضشم نتونه فس بده اون وقت. همین که منشی رفت و در وسط را پشت سرش بست رئیس رو کرد به جوانی که رو به رویش نشسته بود و پرسید چی داشتیم میگفتیم؟ میگفتیم دیگه هیچ و رایت نمی نمیگن حرومه، گناهه بله آقا، مگه اینطور نیست؟ تازه مگه انصاف مونده تو این جماعت از انصافم دیگه خبری نیست توی مملکت به این بزرگی یه جنس نمیتونه پیدا کنی که توش نشده باشه. شیر میخری نصف بیشترش آبه میری آب ای میخری تا سالم باشه همش آب کشیه میگن پارچه پشمیه همش پنبه و کتونه آدما دیگه انصاف و مروت هم حالیشون نیست دوباره سر و کله منشی از لای در وسط پیدا میشود آقا آخرین پارتی روغن که تحویل داده بودیم همش رو کمیسیون رو بازرسی برگردونده چرا؟ مانشی طوری که انگار نخواهد جلوی آدم غریب حرف بزند، منمن من کنان میگوید؟ چیزه، یعنی میگن تو روغنا ناخالصی داره؟ مگه صدی چند قاطی کرده بودیم؟ پارتی قبلی صدی بیست بود، شما گفتین کمه، این دفعه صدی سی قاطی کردیم. ای بابا، چقدر به رئیس کمیسیون بازرسی دادیم؟ سی لیره. توف، حالا معلوم شد چرا جنس رو برگردوندن؟ خب یارو حق داره تو این دور و زمونه سی هزار تا دیگه پول نیست که دستا دلواز باشین دستا دلواز از قدیم گفتن از هر دست که بدی از همون دست میگیری همین که مانشی به اتاقش برگشت رئیس رو کرد به جوان داشتم چی میگفتم؟ میگفتین آدمها دیگه انصاف و مروت حالیشون نیست بله دین و ایمون هم حالیشون نیست کسی فکر آخرتش نیست کسی فکر فقیر نیست کسی دیگه صدقه نمیده، فطره و زکات نمیده، اما باز مباظب باشی وقتی داری به فقیر کمک میکنی و اندازش بدی. اگر نه روش زیاد میشه ها، هرچی خود قسمتش کرده همونقدر بهش بده. دیگه کسی به فقرا رو کمک نمیکنه. منشی سرش رو از لای در آورد تو و گفت یه خانومی اومده میخواد شما رو ببینه؟ تا رئیس بخواهد حرفی بزند دو زن آمدن داخل یکی از زنها گفت آقای محترم از طرف انجمن حمایت از کودکان فقیر خدمتتون اومدیم یه خواهشی داشتیم رئیس گفت خانوم الان کاره. كاره هرچه میخایی سر بگو اگه بیشتر از یه تون باشه سریب دو تخفیف میدیم حالا فقیر مغیر هر چی میخواد باشه کمتر از این نمیتونیم بدیم اگه بابا من بیاد بیشتر از این تخفیف نمیدم برین اون طرف سفارشتون بدین. فاسطون آماده کنن. زن دوم خواست درباره بچهها و فقر و این ها صحبت بکند که رئیس حرفش را برید و گفت. به صلاحتون همی امروز بخرین. از من گفتن. فردا معلوم نیست. من زن چی باشه. اصلا معلوم نیست فردا جنس تو بازار باشه. اما خواهش ما... خواهش دارم خانم. فقط دو جور جنس تو انبار ما مونده. قفصهای پنجه لیره ای هم داریم ده لیره ای هم نه آبجی، کمیسیون نمیتونم بدم ما کمیسیون به کسی نمیدیم همین که زنها هاج و واج بیرون رفتند خودش را روی صندلی چرخانش ولو کرد و رو به مرد جوان گفت داشتم چی میگفتم داشتی میگفتین دیگه کسی به فقیر فقرا کمک نمیکنه. آره دوباره دستش را به طرف چانهش برد و دستی به ریشه نداشتهش کشید و گفت وجدان نمونده آقا، وجدان، هر جا میری رشوه میخوان اگه رشوه ندیم مگه کارت پیش میره نه، کلات پس مرکز، دیگه آدم با وجدان نمونده منشی در وسط را باز کرد و گفت با آنامه جنسایی که به آلمان سفارش داده بودیم رسیده جنسها را از گمرک ترخیص بکنیم رئیس تسبیح کهروبایش را شطرق گرداند و گفت نه بذارم بمونه چقدر باد بهتون بگم جنسی که توی گمرک بمونه سودش خود به خود بیشتر میشه چشم قربان واسه اجازه نامهی لاستیک صد هزار لیره میخوام فعلا گوشه یه ده هزار لیرهی رو نشونشون بدین تا ببینیم بعد چی میشه همین که ماشی رفت رئیس پارسید داشتم چی بهت میگفتم داشتی میگفتین آدم با وجدان نمونده اگه دروغ میگم دیگه هیچی نمونده، نه اخلاق، نه ناموس، نه وجدان، نه انصاف مونده، نه مرحمت با این وضعیت معلوم نیست آخر اقبتمون چی میشه؟ این مملکت میترسم اینجوری از بین بره با عصبانیت دستش رو به طرف چانهش برد و وقتی دوباره نامید شد، عصبانیتش بیشتر شد و فریاد زنان گفت نه اخلاق مونده، نه ناموس، نه وجدان، نه کمک به هم نه هیچی نمونده یک د وقتی صدایی را که از پشت تلفن می آمد شنید، انگار او نبود که همین الان داشت با عصبانیت داد و فریاد می کرد. یک دفعه صدایش نرم شد و گفت. سلام عزیزم. سلام عمرم. تو امر بکن. خواهش می نه، اونقدر چه سال نمی خوام. چون ناشی عذاب در میاد. بیوه هم نمی خوام. به درت نمی زن خونواده داره چی باشه فرق می کنه. چی؟ زاغ بور؟ مم، حالیه تو همه چی آماده بکن من از سای خدا میرسونم فعلا. تلفن را قطع کرد و از مرد جوان پرسید داشتم چی گفتم جوان گفت می گفتین هیچ چی نمونده از جایش پرند شد کلوهش را رو از روی میخه دیوار برداشت و گفت بله هیچ چی نمونده صحبت هم پای تلفن شد که وقتی زن خانواده دار خودک بیفهم دیگه هیکی نمونده مک دروغ میکم مرد جوان گفت نه واقعا راست میگین